أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأعلمة الهدات المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوسياء عليهم آلاء التهيية والثناء بهم هم نتوله و من اغدا هم او الالله رختات های اسلام گاهی مربوط به نومت است و زمانی مربوطی به امامت و جامعه مشترک بین این دو فضیلت الهی ولایت است جریانه امامت علیه ابن عبی طالب علیه حفظ نسلوات المسلیم هم در جریان قدیر مطرح است که بزرشت هم در جریان مباهله مطرح است که در آستانه این رخداد شیرین تاریخ استیم مباهله که از بهال و تذره است یک سنخ دعا است انسانی که مستجاب و است از کرامت برخوردار است. خصوصیت مباهله در این نیست که اینها اهل دعایند و دعای اینها مستجاب است. زیرا این لازمه اسمت و لازمه امامت نیست یه لازمه مشترکی است. ممکن است برخی از مؤمنان ویژه دعاشون مستجاب باشه. آنچکه که در جریان مباهل مطرح است هست است که اول برهان بود بعد دعای اثر بخش. وقتی مسیح ها به وجود مبارک پیغمبر علیه و علیه آلی آلا خود و سنا گفتن مگر می شود انسان بدون پدر به دنیا بیاید. پدر مسیح سلام الله علیه الله الله از او ابن الله قاعد جریان تسلیس از اینجا صورت گرفت در جان ابن الله بودن از اینجا صورت گرفت و ماننده ذات اقدسی الله برهان اقام کرد فرمود همونطوری که ممکن است یک انسانی بدون پدر و مادر مثل زود که آدم آفریده بشود آفریده شدن و خلق کردن انسان بدون پدر آسون تر است ان مسئله عیسی الله که مسئله آدم خلقه من تراب ثم بقاله و کن و وقتی این برهان را وجود و بارش پیامبر برای مسیحا اقام کرد اونها توحید دست شدند یعنی نقدی نداشتن اشکالی نداشتن از اون به بعد بر این کارشون اصرار داشتن آیه سره بارکه آل امران نازل شد تا من حاج جکی من بعد ما جاکم در علم یعنی بعضی که برهان اقام شد که آفرید شدن انسان بدون پدر ممکن است محال لیست، زیرا آفرینش انسان بدون پدر و مادر سابق دارد شرست بدون پدر جریان آدم این طور بود به شما مسیح میپذیرید که آدم بدون پدر و مادر آفریده شد پس برهان اقامه شد بر امکان آفرید شدن انسان بدون پدر فمن حاج جکفیه من بعد ما جا در اهل هنگاه اگر برهان عقلی اثر نکرد شاهد تجربی و دعای مستجاب اثر بخش بخواد بود فرمود با مسیح ها از راه محال را به حال دعوت کرید به حال مباهله عبارت از این است که از خدای سبحان بخواهید هر کدام بر حق او را حفظ کن هر کدام بر باطلن او را از بین ببرد سبحانه جک فیه من بعد ما جاء حکیم در ال طعال بیایید ند و ابنا و ابنا و نساء و نساء و الف و سرا و پسکا ثم نبتل و نجلانا ات الله علیه ال کا ما میگوییم عیسی بنده خداست مخلوق خداست به پیامبر است شما معاذ الله بر این پندار باطلیید که عیسی ابن الله هست ایسا و روح القدس و الله سلاسن و خدا سالس سلاسه هست ما میگویم تسلیس است به توحید حق اگر بعد از اون باز بر این کارتون اشرار دارید بیایید ما زنها و فرزندانمون و خودمون رو دعوت میکنیم یا کسانی که به منزله خودمون هستن دعوت میکنیم و از خدایی سبحان میخواهیم اون قدرت را به ما عطا کند که ما لعنت خدا را بر کازمین قرار بدیم چند تا انصار مهوری در این کریمه هست که به برخی از اونا اشاره میشود وجود مبارک رسول خدا طبق دستور الهی فرمود بیایید ما با حاله کنیم به حال به ابتهال به تذرره یه سنخ از دعاست اولا دعا سلاح مؤمن است که در روایات شده است دعا سلاح المؤمن این دو مطلب این سلاح قسمت مهم کار بردش سلاح دفاعی است یعنی انسان دعا میکند تا از آسیب و افت و آفد مسون بماند الدعا ترس المؤمن دعا سفر است دعا نفرین نیست دعا برای از بین بردن دیگری نیست دعا برای مسونیت خود و کشور خود به جامعه خود و ملت خود و دین خود است از دعا ترس و بخش آخرین است که اگر کنون که این دعا که به منظور سیانت است اثر نکرد اونگاه از این دعا که سلاح مومن است تیر و دیزب و شمشیر ساخته می شود اینجا جای لعنت است لاکن لعنت کردن دو قسم است لعنت یعنی بعده از رحمت یک وقت ما از ذات اقدس اله می خواهیم که فرون شخص یا فرون گروه را از رحمت دور کن این طلب لعن است یک وقت از ذات اقدس اله می خواهیم اون قدرت را به ما بده که ما لعنت تو را و بعد از رحمت تو را بر اونها قرار بدیم این ترین قلعه استجابت دعاست سم نبتهل فنجع لعنت الله ما قرار میدیم لعنت خدا را نه از خدا میخواهیم که اونها را لعنت کن یک وقت میگوییم اللهم لعن اول ظالم دلمه یه وقت خود ما به ازن خدا به دستور خدا با قدرت الهی لعنت خدا را بر طبقار قرار میدیم جریان به حال معروف و مباهله شناخته شده جعل لعنت است نه درخواست لعنت این نشته دوم تعبیری که بوجود مبارک پیامبر کرد فرمود ما به شما ما نفس خودمون رفت دختر خودمون رو ترزندار خودمون دعوت بکنیم این که وجود معرک پیامبر به دستور خدا به اونها فرمود ند او ابنا انا و ابنا اکم و نساء انا و نساء اکم و انف و سنا منظور از انف و سنا حتما باید کسی باشد که به منزله نفس ما باشد وگرانه اتحاد دای و مدعف که ممکن نیست ما خودمون رو دعوت بکنیم یعنی چه؟ ما کسانی را دعوت میکنیم که منزله خود ماست ما و اون چرا که این آیه میگوید دعوت کننده پیغمبر است مدعوب سه گروهن سه قسمن نسا پسر و نفس و روزی مباهله که شد دیدن وجود محراش پیامبر صلی اللہ علیه وسلم امام حسن، امام حسین، حاکت می‌زهراسلام مولاها را و علی ابن ابی طالب را به همراه هم قرار داد. از اون جهت که فرمود، ابن آناف حرزندهارون را امام حسن و امام حسین را قرار و از اون جهت که فرمود، نساء آنها دخترشون را از اون جهت که فرمود، و فوسان وعلی ابن ابی طالب را قرار بعد گفتند به ازند خدا این دستور صادر شد. ما قرار می دهیم. نه از خدا می خواهیم که لعنت کن ما به ازن خدا لعنت خدا را بر قرار می دهیم اساسی این بعد این است که کاذب یعنی دروگو به کسی که تماشاشی سحن است حاضر در سحن است و گزارشگر نیست او نه صادق است نکازه چون مقسم اینها گزارش است کسی که خبر میدهد یا صادق است یا کازه کسی که مستمع است در جای نشسته است یا همراه کسی است او نه صادق است نکازه زیرا صدق و کس فرع بر اخبار است کسی که خبر نمیدهد نه صادق است نکازه وجود که پیغمبر صلی علیه و سلم طبق دستور خدای سبحان فرمود لعنت خدا را بر کازمین قرار بدیم یعنی در جمع ما چند گزارشگر وجود دارند در جمع شما هم چند نفر گزارشگر وجود دارند یعنی حسن ابن علی گزارش می دهد. حسین ابن علی گزارش می دهد علی ابن عبیدارم گزارش می دهد. فاطمه بنت رسول الله علیه هم و تهید و سلام گزارش میدن اینا خبر میدن اینا تماشاچی نیستن مستمع در صحنه نیستن اینا از وحدانیت خدا خبر میدن اینا از وحی نبوت خبر میدن اینا از بهشت و جهنم خبر میدن اینا از توحید در برابر تسلیس خبر میدن اینا خبر میدن که ابن اللهی باطل است سالس و سلاسه باطل است. اینا خبر میدن گزارش میدن معلومش سمتی دارن برعصال این سمت از آن پیغمبر صلی سلام است و اینا همچنین از علوم وحیانی با خبرن و از دوده تاها و عصره یاسینن به ازد پیغمبر دارن خبر میدن پس این دو عنصر محوری قبل از این که به مرحله نفس برسیم از ابتکارات و اون برجستگی ها و قلعه این مسئله به حال و است. یکی این که پیغمبر به ازن خدا گفت ما لعنت خدا را قرار میدهیم. بلی خدا یعنی کار به دست اوست است به ازن خدای سبحان. فنجع لعنت الله نند الله انیل انهام. نه اینکه از خدا میخواهیم که اونها را لعنت کند برای اینکه ما لعنت خدا را قرار میدیم این یک عنصر مهوری عنصر محوری دیگر این است که حسن خبر میدهد حسین خبر میداد، فاطمه خبر میدهد علی خبر میدهد علیه الفضل و صلوات المصدی اینا تماشاشی صحنه نیستند اینا مستمع صحنه نیستند اینا گزارشگرن و چون یقیناً اینها صادقاً طرف مقابل مشمد کازم. این دو سر مهوری که مشترک بین این چهار وجود مقدس است که در صحابت حضرت رسولم. اما اونچه که مربوط وجود مارک علی ابن ابی طالب است و فضیلت ممتاز اوست و از ابنا او بالاتر است از نسان اونا بالاتر است این است که به ازد خدا وجود وارک پیغمبر گفت ما از کسانی دعوت میکنیم که در این بهال حضور به هم برساند که منزله این منزله جان ماست انفوسنا این انفوسنا از فخر آورترین الغام وجود مبارک علی ابن عبیدالب سلامونان است مرهوم شیخ توصی در اماری شافی در امامت نقل می کند این کنزر اعمال هم این رو نقل کرده است مرحوم شهر توسی نقل بکند که یکی از افرادی که محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو درک کردن سوال کردن از صحابه که شما نظرتون در باری اصحابتون صحابتون چیست وجود بارک پیغمبر درباره باری برخی از اصحاب سخنانی فرمود. این شخص عرض کرد که من درباره صحابه س hỏi گفتم شما درباره علی ابن ابی طالب رو فرمودید. حضرت عمو سوال تو درباره اصحابه. اصحاب من است سوال تو که درباره نفس من نبود علی نفس من است تو سوالت رو عوض بکن منم جواب بدم تو از اصحاب سوال کردی نه از نفس علی نفس من است این ها نشون که وجود مبارک علی ابن عبی طالب به منزلی جان متحر رسول خداست اون قصه معروض هم همین رو نشون میده. دهد وجود که پیغمبر فرموند که است که در بهشت است و شاخ هاش به خانه مؤمنان می رسد و اصل این درخت در خانه من است در جلسه دیگر درختی است در بهشت اصلش در خانه علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. برخی عرض کردن یا رسول الله شما گاهی میفرمایید شجره توبه است که اصلش در خانه من است، گاهی میفرمایید شجره توبه است که اصلش در خانه علی است، همون دوری به دار علین واحد. منزل من و انزل علی یکی است. بنابراین روز مباهله از مقدسترین روزهای ایام سال است که این به این دعا درجاتی دارد اول سلاح مؤمن است به عنوان سلاح دفاعی، بعد سلاح تهاجمی، بعد گاهی این سلاح را انسان از خدا می خواهد که در باری دیگری اعمال کند گاهی ازن خدا اون صلاح را در بر میگیرد و این به حال و سخن در این نیست که ما از خدا بخواهیم اللهم لعن کزا و کزا بلکه ما ازون از طرف خداییم که لعنت را به بعد از رحمت را بر دیگران نازل کنیم یعنی خودمون به ازن خدا روحی را از رحمت خدا دور کنیم به اونطور مهوری و, اون و اسیر این مواهده همون دریان تعبیر نفس است. برخی ها خواستن نقد کنن به وجود مبارک امام رضا سلامالله عرض کردند، عباسی ها این طور بودن و در عباس این طور بودن. خواستن این تعبیر انفسنا را تعبیر عادی بدونن. گفتن انفسنا یعنی رجالنا منظور از انفس یعنی مردها به چه دلیل به قرینه نساب چون خدا فرمود نساءنا این انفسنا در مقابل نساءنا است پس انفسنا یعنی رجالنا اونگاه به امام رضا سلام الله علیه عرض کردند که شما توانید به این دلیلی دلیل بیاورید بر فخر علی لولا نسا اونا اگر کلمه نسا اونا نبود این انفسنا دلیل فخر علی بود اما چون نسا هست منظور ان انفسنا یعنی رجال اونا و این رجال بودن و مرد بودن فخری نیست وجود مبارک امام رضافمون لولا ابنا اونا اون نسا اونا در براور ابنا اوناست یعنی دختران ما در برابر پسران، پسران ما در برابر دختران، اون نساءنا در برابر انفسنا نیست، اون نیست. اگر ابناانا نبود، این نساءنا در برابر انفسنا بود، ممکن بود که بگوییم اون انفسنا یعنی رجالا. پس مستشکل عباسی میگوید لولا نساءنا، اگر نساءنا نبود انفسنا درید و فضیلت بود چون نساء ونا هست انفسنا ونی رجال است وجود مبارک امام رضا هم لولا ابنا اونا اگر ابنا اونا نبود اونگاه نساء در قبال انفوس بود و انفوس در قبال نساء و انفس بنی رجال بود چون ابنا هست نساء در قبال ابلاس ابنا در قبال نساء و انفوس مقابل ندارد بنابراین فضائل فراوانی در روز مباحل است گدشت از اینکه مسئله خاطم بخشی یه فضیلت خاص خودش دارد دارد و آیه مبارکه اینم آمالی کمالله هم نازل شده است اما انصر محوری روز مباحل همون استجابت داست باور کنید که دنیا جای جعل بدل و انکار حق است در شیخ شخ از مغنی مال و خاض جبار او میگوید که به منشوی و خاب من یون اینکه رو وجود بودقلی فل به ها. به روز روشن یه حقیقتی رو دا انکار میکنم به انکار کردن. گفتن بعضی از بزرگان ما میدان علی در نبود حال نبودبانکه روز روشن همه دینه. جهان از این انکار حق و ابتال حق و دایی باطل داشتن کم ندید بنابراین روزیم و باخله جریان بحال و معنای ابتحال و حضور علی سرامون لعلی و معنای نفس رو باید گرامی بداریم تا مبادا خدای ناکرده اون چرا که صاحب المونی قاضی عبدالجبار از بعضی از مشایخ سو نهرکد که علی جبن عوی طالب حاضر نبود دیگر بار چیزی تکرار نشود و از طرف فضیلت این روز در است که دعای مخصوصی دارد که این دعای مباحله همون دعای سحرهای ماه مارک رمزان است با یه تفاوت مخصوص و یک ترجیبند خاص آغازش اللهم نسعر کمل بهاو که بهاو و کل بهاو که وئ اللهم نسعر کمل بهاوی کله با جمال و جلال اله را بازی می کند این دعا چند جمله بیش از دعای سحر معبود معروف است یک یک ترجی بند دل مایه و دلپذیر رو دلروا هم دارد دو که این دو خسیسه این دعا را از دعای سحر جدا کرده است و مستحب است که این دعا را مؤمنان در روز 24 ماه پربرکت ذی الحجه قرائت و تلاوت کنند و ثواب این را هم به دودی تاها و قسره یاسین اهدا کنند که ذخیره دنیا و آخرت باشد من مقدم همه علاقمندان را گرام می دارم از ذات اقدس الله مسألت میکنیم نظای ما رهبر ما براجع ما نولت و ملت و ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید روح متحره امام راهل و و اولیاء الهی محشون فرماید خطر تکفیری و سرفی و داعشی را به استقبار سهی برگرداند ارواح مؤمنان مخصوصا جامباقتگان را با اولیای الهی محشوب فرماید و خانواده های معزز و معزم این جمباختنام صبر جمیل و عجل جزیل مرحمت فرماید و کسانی که این قتل شبه عمد را مرتکب شدند کیفر دنیا و آخرت بدهد و این را از آل سعود نجات مرحمت کند و فر الله لنا و